بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بیاندازه مهربان نهایت وا بگمون این قرآن را در شب قدر نازل کردی و چی چیز تورا آگاه ساخت که شب قدر چیست شب قدر بهتر از هزار ماه است در آن فرشتگان و روح به اجازه پروردیگار برای هر کار فرود می آیند و از همه چیز سلامتی و آرام شست این حالت تا طلوع بامداد دوام دارد